دمدمه های غروب بود و جز آسمان و دریا چیزی را نمیدید. باد در آسمان بیشتر شده بود و امیدوار بود که به زودی خشکی را ببیند گفت دو خسته پیرمرد از درون خسته ای تا غروب خورشید کوسه ها حمله نکردند پیرمرد باله های قهوه‌ای را دید که در مسیر گستردهی که ماهی از خود به جا می گذاشت، پیش می آمدند حتی دنبال رد بو می گشتند به پهلو و مستقیم به سوی قایق شنا می کردند دسته سکن را فشرد تناب بادبان را محکم کرد و در انتهای کف قایق به جستجوی چوب دستی پرداخت چوب دستی دسته پاروی شکسته ای بود که نزدیک هشتاد سانتیمتر طول داشت فقط می توانست با یک دست از آن استفاده کند چون دست چپش گرفته بود و با دست راست محکم چوب دستی را گرفت و دستش را دوران خوب فشرد و به آمدن کوسه ها نگریست هر دوشان گالانو بودند فکر کرد باد بذارم اولی کارش شروع کنه اد بکوبم به نوک دماغش را به فرق سرش دو کوسه با هم نزدیک می شدند و همین که فکهای کوسه نزدیک تر از هم باز شد و در پحلوی نقرفام ماهی قوت خورد پیرمرد چوب دستی را بالای بالا برد و سنگین فرود آورد و بر فرق سر پهن کوسه اما چون که ضربه را فرود می آورد، سفتی لاستیک مانندی را حس کرد اما سختی استخانها را هم حس کرد و بار دیگر محکم به نک دماغ کوسه که از کنار ماهی به درون آب می لغزید کبید کوسه دیگر در این مدت یک بار فکهایش را به گوش ماهی فرو کرده و بیرون آورده بود و اکنون بار دیگر فکهای بازش در تن ماهی فرو رفته بود و با هر ضربه که به ماهی میزد و فکهایش را می پیرمرد می توانست تکه های سفید گوشت ماهی را از گوشه فک های کوسه ببیند پیرمرد به سوی کوسه خم شد و فقط بر فرقش میکوفت و کوسه به پیرمرد نگاه کرد و گوشت را پیچاند و کند پیرمرد بار دیگر چوب دستی را تاب داد و فرود آورد و همچنان که کوسه دور می شدد تا لغمش را ببلعت فقط بر آن سفتی لاستیکی سخت میکوفت به بیا ق بزن کوسه با خیزی سریع آمد و همچنان که فکتهایش را میبست پیرمرد محکم برو کوفت محکم و از بالاترین نقطه ای که دستش می رسید بر او کوفت این بار استخوان کف مغز را حس کرد و هموندم که کوسه گوشت ماهی را به سستی و تنبلی می و از کنار ماهی به درون آب فرو میلغزید ضربه دیگر بر همان نقطه کوفت مرد در انتظار بازگشتش به آب نگاه میکرد اما هیچ کدام دیده نمیشدند. بعد یکیشان را دید که روی آب وار شنا میکرد اما بال های دومی را ندید فکر کرد نباید تلاقه داشته باشم که بکشمشون اون وقتا میتونستم دروض خوب زدمشون و نباید حالا هیچ کدوم خوب باشه و فکر کرد حتی الانم هم اگه میتونستم دو دستی شماقو بگیرم، حتما اولی رو کشته بودم. دلش نمیخواست به ماهی نگاه کند. میدانست که نیمی از آن تباه شده است. در مدتی که با کوسه ها میجنگید، خورشید فرو رفته بود. گفت، مزودی هوا تاریک میشه بعد میتونم روشنهای هاوانه رو ببینم. اگه خیلی به طرف مشرق رفته باشم؟ یکی از ساحلهای تازه تازه هم میبیم؟ف کرد. دیگه نباید خیلی از ساحل دور باشم؟ کاش کسی نگرانم نشده باشه. البته فقط پسرک نگران میشه. اما میدونم که به من اطمینان داره. خیلی از ماهیگیرای پیرترم نگران میشن. دیگرانم هم اینطور. و فکر شرد تو خوب شهری زندگی میکنم. دیگر نمی با ماهی حرف بزند چون بد جوری تباه شده بود. بعد فکری به سرش زد. گفت ای نیمه ماهی که یه وقتی ماهی بودی متاسفم که زیاد دور رفتم. هر اونو نابود کردم. ولی در عوض من و تو کوسه های زیادی رو کشتیم و خیلی شونو رو کردی. پسی پیر ماهی تو تا چند تا اون رو کشتی یا؟ اون نیزه رو که علکی رو سرت نذاشتن. دوست داشت به ماهی فکر کند. اگر آزاد بود چه بلایی بر سر کوسه ها می آورد؟ فکر کرد باید تیغه روی بینیش رو می باریدم و با اون کوسه ها می جنگیدم. اما تبر نداشت. بعد چاقو هم از دستش رفته بود ولی اگه داشتم و میتونستم ببندمش به دسته پارو مم. عجب سلاحی عذاب در میومد. موقع وقت میتونستیم هر دو با هم به جنگیم. اگه شبونه سر برسن چه میکنی؟ چه میتونی بکنی؟ گفت می جنگم تا دم مرگ باشم می جنگم. اما اکنون در تاریکی و دور از نور و چراغ‌های شهر و یک و تنها با باد و کشش یک نواخت بادبان حس کرد شاید هم اکنون مرده است. دو دستش را بر هم گذاشت و کف دستهایش را حس کرد. آنها نمرده بودند و فقط با باز و بسته کردنشان می درد زندگی را حس کند. پشتش را به چوب انتهای قایق تکیه داد. و دانست که است. این را شانه هایش به او می گفتند. فکر کرد. پاید دعاهایی رو که نظر گرفتن مایی کردم بخونم. ولی حالا برای خوندنشون خیلی خستم. بهتر گونی رو بذارم رو به تخته پشت قایق تکیه داد و به آسمان چشم دوخت. و به انتظار پیدا شدن روشنایی شهر نشست فکر کرد فقط نصفش برام مونده شاید اونقدر یارم باشه که این نصفه باقی مونده رو به ساحل برسونم بالاخره باید یه جو وقت داشته باشم اما نه تو همون وقت که اون همه دور رفتی وقت تو علیه خودت شروندی بلند گفت احمق نشو بیدار باشو قایق تو برون هنوزم ممکنه وقت تمرات باشه گفت اگه جایی بود که وقت میفروختن میرفتم و یک کمی میخریدم از خود پرسید با چی میخریدم؟ با یه نیزه گم شده یا چاقوی شکسته و تا دست از کار افتاده؟ گفت با اونام میشد تو پیرمرد مند حسنی با و چهار روزی که تو دریا گزرندی بخریش خب اونام تقریبا بهت فروختن فکر کرد نباید فکری پرت و پلا بکنم بخت به هزار شکل به آدم رو میکنه چطور میشه اونو شناخت در هر صورت باید اونو به هر شکلی که در اومده باشه بخرم و هر قیمتی که براش بخوان بهشون بپردازم فیکس کرد کاش میتونستم نور چراغ رو ببینم آه خیلی آرزوهای دیگه هم دارم اما الان تنها آرزوم همینه سعی کرد جایش رو راحت کند و قایقش رو براند و از دردی که میکشید میدانست که است. حدود ساعت ده شب بود که باستاد روشنایی چراغ‌های شهر را دید. ابتدا چون ای بود که پیش از طلوع ماه آسمان را روشن می‌کند. بعد ثابت روشن شد و میشد در پرتوش اقیانوس را دید که با شدت گرفتن نسیم مپوا شده بود. پیرمرد قایق را به درون نور راند و فکر کرد که به زودی در مسیر جریان قرار خواهد گرفت. فکر کرد حالا همه چیز تموم شده شاید بازم به من حمله بکنن ولی آدم تنها تو دل تاریکی و بدون سلاح در مقابلشون چیکار کار میتونه بکنه؟ اکنون بدنش خشک و پردرد بود و زخمهای دستش و همه قسمتهای صدم خرده بدنش از سرمای شب در عذاب بود فکر کرد کاش دیگه مجبور به جنگیدن نشم کاش دیگه هیچ وقت مجبور به جنگیدن نشم اما نیم شب جنگید و این بار میدونست که بیهوده می جنگد آنها گله‌ای آمدند و پیرمرد تنها میتوانست خطوطی را که از هایشان در آب رسم میشد و درخشش بدنشان را وقتی روی ماهی میافتادند ببیند بر فرقشون میکوفت و صدای آروارهشون را میشنید و وقتی به زیر قایق میرفتند لرزش قایق را حس میکرد با نومیدی بر هرچه فقط حس میکرد و میشنید میکوفت و حس کرد چیزی چوب دستی را میگیرد و چوب دستی رفته بود دسته سکان را به شدت از سکان بیرون کشید و با آن میزد و میکوبید و با دو دستش آن را گرفته بود و پایین می‌برد و بالا می‌برد اما حالا دیگر تا تخته جلوی قایق بالا آمده بودند و با هم و پشت سر هم می‌کندند و وقتی عقب گرد می‌کردند تا دوباره برگردند چکه های گوش را که زیر آب می‌درخشید از هم می‌دریدند سرانجام یکی از آنها روبروی سر ماهی قرار گرفت و پیر پیرمرد دانست که کار تمام شده است سکان را بر فرق کوسه و بر همون جا کوفت که آروارها در سنگینی و سختی سر ماهی که دریده نمیشد فرو رفته بود و کوبید و باز کوبید و باز کوبید صدای شکستن دسته سکن را شنید و چوب شکسته را به بدن کوسه فرو کرد پس کرد که چوب فرو می رود و دریافت که سر چوب تیز شده و بار دیگر چوب را به بدن کوسه فرو کرد کوس رها کرد و دور شد این آخرین کوس از گله کوسه ها بود دیگر چیزی برای خوردنشان باقی نمانده بود اکنون پیرمرد به سختی نفس میکشید و تأمی عجیب در دهانش حس کرد تأمی گس و شیرین که برای لحظی پیرمرد را ترساند. اما زود برطرف شد به درون اقیانوس توف کرد و گفت ولن کشتن یه مردو نگی به خواب ببینید میدانست که سرانجام شکست خورده است و میدانست که چاری در کار نیست و به عقب قایق برگشت و دید که با جا دادن دسته‌ی سکان درون شکاف سبکان می میتواند قایق را به خوبی هدایت کند گونی را دور شانه‌هایش پیچید و قایق را به دست جریان سپرد اکنون آرام و سبک میراند و دیگر هیچ فکری و هیچ احساسی نداشت همه چیز را پشت سر گذاشته بود و اکنون قایق را با مهارت و هوشیاری تمام به سوی خانه میراند در طول شب کوسه ها چون ریز خاران سفرت به جسد ماهی حمله میکردند پیرمرد به آنان اعتنایی نداشت به هیچ چیز جز راندن قایق اعتنا نداشت تنها در این اندیشه بود که قایق که دیگر هیچ باری با خود نمی‌کشید چه سبک و خوب حرکت می کند کرد قایخ خوبیه موکنه و توز دسته سکانش که شکسته هیچ عیب و ایرادی نداره درست کردن اونم کاری نداره فکس کرد درون جریان قرار گرفته و می توانست چرا های آبادی هایی را که سراسر ساحل قرار داشتند ببیند خوب می دانست که کجاست و دیگر چیزی به خانه نمانده بود فکر کرد در هر حال باد دوست باست بعد افسود گاهی وقتا و دریای بزرگ با دوستانمون و دشمنامون و بستر فکر کرد بستر دوست منه فقط بستر بستر چیز فوق العادهه فکر کرد بعد از شکست چقدر آسون میشه اصلا نمیدونستم که انقدر آسون میشه فکر کرد و هیچ وقت نمیدونستم چقدر میتونه شکستن بده بلند گفت هیچی فقط خیلی دور رفتم وقتی به بندر کوچک رسید چراخهای کافتراس خاموش بود و می دانست که همه خوابیدند وزش باد هر دم بالا گرفته بود و به شدت می وزید. بندر ساکت بود و پیرمرد قایق را تا توده شن پایین سخراها پیش برد کسی نبود که به کمکش بیاید پس تا جایی که می توانست قایق را بالا کشید بعد قدم از قایق بیرون گذاشت و آن را محکم به تخت سنگی بست دکل را پایین کشید و بادبان را لوله کرد و گره زد بعد دکل را روی شانهاش انداخت و ها بالا رفت تازه اکنون به عمق خستگیش پی می برد لحظه ایستاد و به عقب نگریست و در پرتوبه چراغ‌های خیابان دم عظیم ماهی را دید که راست افراشته بود و از پشت قایق سر برآورده بود. سفیدی اوریان خط ستون فقرات و توده تیره سر ماهی و نیزه تیز و همه اوریانی بین این دو قسمت را دید. باز به بالا رفتن سخرها ادامه داد و به بالای آن که رسید بر زمین افتاد. و مدتی با دکل که بر شانههایش بود دراز کشید. کوشید برخی زد، اما خیلی مشکل بود و با دکل بر شانههایش نشست و به جاده نگریست. گربهی در دور گذشت و دنبال کارش رفت و پیرمرد نگاهش کرد. بعد فقط به جاده چشم دوخت. سرانجام دکل را بر زمین گذاشت و ایستاد. دکل را برداشت و روی شانهش گذاشت و راه جاده را در پیش گرفت تا کلبهش پنج بار بین راه نشست در کلبه دکل را به دیوار تکیه داد در تاریکی بطری آبی یافت و جرعی نوشید بعد روی بستر دراز کشید پتور را روی شانههایش کشید و بعد روی پشت و پاهایش انداخت و با صورتش که توی روزنامه ها فرو رفته بود و بازوانش که راست از هم باز شده بودند و کف دست که رو به بالا بود به خواب رفت صبح که پسرک به درون کلب نگریست هنوز خواب بود بعد چنان شدت گرفته بود که قایق بادی نمی به دریا بروند و پسرک تا دیر وقت خوابیده بود و مثل هر روز صبح به کلبه پیرمرد اومده بود. پسرک دید که پیرمرد نفس میکشد و بعد دستهایش را دید و به گری افتاد. آرام بیرون رفت تا کمی قهوه بیاورد و در تمام راه میگریست. بیشتر ماهیگیران دور قایق جمع شده بودند و به آنچه با خداورده آورده بود نگاه میکردند. و یکی از آنان پاچههایش را بالا زده بود و داشت با نخ طول اسکلت ماهی را در آب اندازه می گرفت. پسرک نزدشان نرفت. قبلا رفته بود و یکی از ماهیگیران داشت به جای او از قایق مواظبت می کرد. یکی از ماهیگیرها فریاد زد. آنش چطوره؟ پسرک گفت. خابیده. اهمیت نمیداد که ماهیگیرها گریش را ببینند. هیچ کس نباید مزاهمش بشه. ماهیگیری که داشت اسکلت ماهی را اندازه می گرفت گفت از دماغ تا دمش پنج متر و نیمه پسرک گفت باور میکنه به قهوه خانه رفت و یک قوطی قهوه خواست داغ باشه با شیر و فراوون فرعون گُذدیگه نمیخوای نه بعدش بعد ببینم چی میتونه بخوره صاحب کافه گفت عجب ماهی داره هیچ همچین ماهی ماهی ندیده اون دوتایی که تو دیروز گرفتیم بعد نبودن و... پسرک گفت به قبر پدرشون و باز به گریه افتاد صاحب کافه گفت خودت یه نوشیدنی میخوای؟ نه بهشون بگو موزم سانتیاکو نشن حالا بر میگردم بهش بگو خیلی برش متاسفم پسرک گفت متشکرم. اوتی داغ قهوه را به کلبه پیرمرد برد و کنارش نشست تا بیدار شود یک بار به نظر رسیده بود که دارد بیدار می شود اما دوباره به خوابی عمیق رفته بود و پسرک به آن طرف جاده رفته بود تا برای گرم کردن قهوه کمی چوب قرض کند سرانجام پیرمرد بیدار شد پسرک گفت از جاد بلند نشو اینو بخور و مقداری از قهوه را توی لیوان ریخت پیرمرد قهوه را گرفت و نوشید شکستم دادن مانولین واقعا شکستم دادن اون تو رو شکست نداد ماهی تو رو شکست نداد نه در واقع نه منظورم بعد از اونه پدریک داره قایق و بقیه چیزا رو میپاد با کلش میخوای چیکار کنی؟ بزا به جای تومه برش داره. نیزش چی؟ اگه میخوای مال خودت. پسرک گفت. میخوامش. حالا با نقشه کارهای دیگر رو بریزیم. دنبالم گشتن؟ معلومه. با گارد ساحلی و با هواپیما. پیرمرد گفت. اقیانوس خیلی بزرگه و... قایق کوچیک که دیدنش مشکل دید چه لذت پخ است که به جایی اینکه تنها با خودش خودشو با دریا حرف بزند کسی را داشته باشد و با او صحبت کند گفت جاد خیلی خالی بود تو چی گرفتی یه ماهی روز اول گرفتم یک روز دوم و دوتام روز صون که خوب ما دوباره با هم ماهی میگیریم نه من بعد بیارم دیگه وقت از من برگشته پسرک گفت گوره بابای بخت خودم وقتت میشم <تصفيق> پدر و مادر چی؟ بلشون کن دیروز دوتا گرفتم اما از حالا به بعد دیگه با هم ماهی میگیریم چون هنوز خیلی چیزاست که باید از تو یاد بگیرم باید یه نیزه قهار حسابی درست کنیم و همیشه توی قایق نگاه داریم. تیغش رو میتونیم از شافنر یه فرد قرازه درست کنیم. میدیم تو گوانا با کوا تراشش بدن. باید خوب تیز باشه و نرم نباشه که زود بشکنه. چاقوی من شکست. یه چاقوی دیگه برات گیر میارم و فنرم تراش میدم. ام. این باد شدید تا چند روز دیگه میاد؟ شاید سه روز. شاید بیشتر. پسرک گفت همه کارا رو درست میکنم فقط بذار دستات خوب بشم پیر مرد بلدم چجوری ازشون مراقبت کنم دیشب یه چیز عجیبی رو توف کردم و حس کردم که یه چیزی توی سینم شکست پسرک گفت اونم خوب میشه تو دراز بکش پیر مرد تو برات لباس تمیز بیارم با یه چیزی که بخوری پیر مرد گفت همه روزنامه های این روزا رو که نخوندم بیار باید زود خوب بشی چون خیلی چیز است که بد ازت یاد بگیرم و تو باید همه چیزو یادم بدی چقدر رنج کشیدی پیرمرد گفت خیلی پسر گفت برات غذا و روزنامه میارم راحت بخواب پیرمرد برای دستتم از دواخونه دوا میخرم یادت نره به پدریکو بگی که سر ماهی مال اونه نه یادم نمیره پسرک از درک بیرون رفت و از جاده سنگ مرجان سایده که سرازیر شد باز بنای گریه را گذاشت روز عصر دسته جهانگرد به کافه آمده بودند و در میان قوتی خالی آبجو و لاشه ماهی سمی چشم زنی به ستون فقرات سفید بسیار بلندی افتاد که به دمی عظیم منتهی شد و با امواج طوفانی که باد شرق به بندر میفرستاد بالا و پایین میرفت. زن ستون فقرات طویل ماهی عظیم را نشان داد که اکنون فقط آشخالی بود در انتظار آنکه با فروم نشستن مد به اقیانوس برود. و از پیشخدمت کافه پرسید: « اون چیه؟ پیش خدمت گفت: کی برون کوسه پیش خدمت میخواست آنچه را که رخ داده بود شرط دهد هیچ نمیدونستم دم کوسه به این قشنگی و خوش ترکیبیه. مرد همراهش گفت: "منم همینطور." بالای جاده درون کلبه پیرمرد دوباره به خواب رفته بود. هنوز به رو خوابیده بود و پسرک کنارش نشسته بود و مراقبش بود. پیرمرد خواب شیرها را میدید.